حکایت یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند. سر و گفت من آنم که من دانم کفیت ازن یا من یعود و محاسنی حلانیتی هازا ولم تدر ما بتن. شخصم به چشم آدمیان خوب منظر است، و از خبس باطنم سر خجلت فتاده پیش، تاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق تحسین کنند و او خجر از پای زشت خیش،